عوض بالله من السلامتان الرزیم بسم الله الرحمن الرحیم الله صل على محمد وقال محمد وقال فرجهم ورجحون خدمت و سلام میکنم سلام عرض میکنم از خواهم از اینکه وقت شریف بزرگوران هستم امیدوارم که انشاءالله اون چیزی گفت نمیشه برشنی بمیشه مرزی حضرت هم واقع بشه و دفعه رو زبنده مصده هستم به طالب بگذارم ظاهرم اون محملی که دوستان بزنگاری که به دستور فرمودن که بنده خدمت برسم یه ارائه یک مقاله است تحت عنوان مقاله چالش مجلس و شورای نگهبان در تطریق اناوین سانویه با تأکید بر دیدگاه حضرت قایات الله صافیه گلپایگانی رحمت الله علیه فال اینکه وارد خود مقاله بشم یه نکته رو عنوان مقدمه عرض کنم اینکه خب علاقه بندی بنده و اون دوستانی که با هم این کار رو انجام دادیم این ماجرای اختلاف در هیئت مجلس شورای قهرمان و بعدش تعرض به سلوک و شخصیت حضرت علی تعالی رحمت از اینجا نشرت گرفت که ما شروع کردیم به مطالعه تاریخ انقلاب اسلام با این است که ببینیم که آیا آنچه که امروز متعین شده در ساخت رسمی جمهوری اسلامی اون ساخت حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی آیا تنها ایده برامده از انگاره ولایت مطلبه فقیه هست یا خیر؟ این در دقیقا مسئله اصلی ما بود که بعد این مطالعه یه مقداری عقبتر رفت و از خود مشروطه و مخصوصا کتاب بسیار مهم به تنبیه الامه و کنشگری بزرگان و علمه ما در خود مشروطه شروع شد و در نهایت جنبنده ما این بود که لاقل پنج6 مدل تحقق ساخت حقوقی کلانه. اجتماعی مبتنی بعد انگاره ولایت لایت متلقه امکان پذیره که میشه به صورت تاریخی بهش توجه کرد که یکیش در کتاب تندول امر از سر مرحوم آیتالله نیزه نایمیر من درجه بعد انگاره یکی جناب آقای آیتالله صافی قربایگانی رحمت الله که میشه ریشش حتی برگردون به مرحوم شیخ الله نوری رحمت الله علیه یه انگاره انگاره یه محفظ شهید صدر رحمت الله علیه سلام علیکم الله سلام سلام سلام علیکم و کن. ادامه بده. ادامه بده. ادامه بده. ادامه بده. ادامه بده. ادامه بده. این یک ورودی بحثایت ترجیه ما موجبه بود یکی دیگه از ما به مسئله نوع صلوک و خلقی بود که حضرت اولاد الله صافیه گلتایگانی رحمت الله علیه علا رقم اختلافی که با ایده حضرت امام دارن که الان عرض می کنم در دو ناهیت ولی صدوکش صدوک بسیار بسیار در ساموز مؤمنانه و مجتهی است. چرا این نقطه دوم های اهمیته علت اینه که برام که در کارهای بحثای اصلاح اجتماعی و بحثای اصلاح نهادی و نگاشت نهادی و و و کارهای اندیشکدهی رو دنبال میکنن مستحضرن که یه عنوانی الان خیلی بزرگ شده و بول شده و روش مانعه رو داده میشه و اون اینه که عامل اصلی اختلافاتی که ما در سطح اجتماع داریم عمودتاً یا اجسراً بنامده از تعارض منافع و برای با کل ادبیات درست شده و عقلانیت نازم نهادسازی در اساس این شکل گرفته تعاروز منافع یعنی گروه ها و زینقان و بازیگران صحنه که اینا با هم اختلاف منافع دارن ما در طراحی نهارهای اجتماعی باید جوری رفتار کنیم که منافع اکثریت بازیگران به نه حد حده اکثری تمیم و این امپایی اصلی اقلانیت نهادسازی و تراحی فرایلتوی بکرانی نقطه که به نظرم تو این حرف مقفول میمونه و این ماجرای اول انقلاب اسلامی و بحثان کنشگری مرحوم جناب صافی گلپایگانی رحمتullah علیه میتونه مستاق بسیار بسیار مهمی برای اون باشه تجلی ویژه به این که ما یه سطحی از اختلاف در جامعه دینی داریم که این اختلاف اختلاف اجتهادی است اصلاً بحث منا تعارض منافع نیست این اختلاف اجتهادی چگونه باید حل بشه توفیه می یکی از مسئله های مهم الان خود حوزه های علمی هم هست یه مشتهدی در یه ای با زعیم با نهادهای های مختلفی که امری اجتهادی به اونها تفریز شده دارای اختلاف مبناست این اختلاف مبنام برامد از هوا و هواست نیست برامد از اون شخص بزرگواره ما در این اختلاف چگونه باید رفتار کنیم و ما چه مدلی برای حل این اختلاف اجتهادی داریم با این دوتا نقطه مقدماتی من تنمی کنم یه روایت در حقیقت چند دقیقی از اختلافی که بین مجلس و شورای نگهبان در ماجرای قانون اراضی شهری در سال 1360 صورت گرفت رو تقدیم کنم بعد از اینکه وارد این روایت شدن دوستان میدونن عمده اختلافی که شورای نگهبان و بخش وسیعی از جامعه مدرسین با حضرت امام در تلقی از ولایت فقیه داشت در دو سانحیه است یکی در ناحیه تطبیق عناوین ثانویه است که مجلای این درگیری قانون آراضی شهری که حالا به ریشاش اشاره می‌کنم بحث اینه که در امور اجتماعی در مسئله های کلان حق تطبیح اناوین سانویه یعنی حرج استلزام فساد و ضرورت کار، این ستا بیشتر در اون دوره مورد بحث بوده و در نامه حضرت امام رحمت الله علیه همون درجه این حقه کیست این یک محل اختلافه که عمده شاگردان حضرت امام جامعه مدهرسین عمده فوقه های شرائنگ احوال معترضن که این حق در انحصار ولی فقیه هست به صراحت حضرت امام این حق برای نمایندگان مردم در مجلست و در اصل از حقوق عامی مردم است. این اختلاف یک اختلاف جدیه که اینو یه روایت یاد بکنم یه نکته دیگه که یه نکته یه نکته دیگه که محل اختلاف بوده و اون مجلاش و محل بروز و ظهورش در سال 66 به بعد حتی ریشه هاش از سال 61 62 شروع میشه در مسئله قانون کاره که در اونجا دوباره اختلاف شاگردان حضرت امام و بزرگان شورای نگهبان و جامعه رسین سر اینه که آیا در عقود فیما بین اهاد حالا میخواد بین خریدار و فروشنده باشه یا میخواد بین عجیر و موجر باشه کارگر و کارفرما باشه آیا حاکمیت حق دارد شرط به صورت شرط زن عقد قرار بدهد یا نه؟ آیا حاکمیت حق دارد که در اینجا مداخله کند فسخ کند؟ ولی اینکه قرارداد با قبلا بسته شده باشه یک طرفه یا شروطی را اضافه کند اینجا باد باید محل ده خلاف که اینجا حضرت امام قائل از که حاکمیت ولی یه و ولایت او میتواند این کار بکند عمده شاگردان امام فقهای های مدرسین و فقهای های شورای نگهبان قائلن که جز در موارد ضرورت این حق ثابت نیست این چیزی رو که بنده در این دهده قرآن میخوام یه روایتی ازش بکنم ناظر به اتخلاف علمه یعنی قانون عرضی شهری ناظر به کجا ناظر به این که حق تطبیق اناوینستانوی مال حاکم است یا مردم با امان پیش اینو این رو باید بدونیم که مرحوم آیت الله زافی گلپایگان رحمت علیه با پذیرش سند و دلالت توقی شریف از حضرت وجد عجل الله تعالی فراجع شریف قائل است به ولایت انتصابی و عامه فقیه اینو پیفیش ورز دادود. و معتقد است که در دوران غیبت وضاعف بسیار سنگینی به عهده فقه ها گذاشته شده که رعایت مساله مسلمین کنن اونها رو تمشیت کنن امور آنبر رو راهبری کنن و و و و اینها پیش و عرض های وحث ماست در باب نسبت محدودی ولایت فقیه و احکام شریعت اونجاهایی که خب میدونید اقل همونطور که ارز کردم اشاره داشتم چهار تا ایده است اینجا یه ایده اینه که ما یه احکام ثابت شرعی داریم که این احکام ثابت شرعی چه احکام قطعیه چه احکام وضعیه به جعل الهی ثابت محدوده ولایت فقیه در رتبه امتثال و اجراست همین خاطر وقتی داریم از حکومت فقیه صحبت می‌کنیم حکومت فقیه یعنی حکومت مجری احکام ثابتیه شرعیه یه ایده دیگه مرحوم میرزا ناینی طرح کرده که این ایده در مفهوم فضل الله نوری پررنگه مرمون قائل الله صافی گربایی گرد رحمت طلال هم قائل به همینه یه ایده ایده ای اینه که ما در نصوص دروع اکش داریم در احکام شرعی بعضیا ها منصوصه بعضی ها مالا نصفیه در محدوده منصوصات باید اجتحاد بشود و اونها احکام شرعیه ثابت الهیه در محدوده مالا نصفی اونها دلالت تطبیقی ندارن احکام سابعه احکام منصوص بلکه فقیه اینجا باید تصمیم بگیره و فقیه تصمیمش باید در چارچوب باشد متعارض با احکام ثابت نباشد پس ما با یه سری احکام شرعیه داریم تشخیص اونها به فقیه بگذار شده در محدوده مانا نصفی این ایده منحوم ایزای نامینی در کتاب تنبیل اومنست هرچند که اونجایی که باید تصمیم بگیرد فقی واجب است که مشورت عمومی کند یه ایده درگومی وجود داره ایده هم شهی صدقه که در این ایده اینه که آنجایی که احکام شرعیه احکام مجبول الهی احکام الزامی است فقیه حق ولایت ندارد محدودهی ولایت فقیه کجاست؟ مباهات آممس است در محدودهی مباهات عام فقید میتواند اینجا جعل حکم الزامی کند و مساله زمانه و و وقت کنید اقتضاعات زمان و مکان مساله زمان و مکان محدوده محدوده مباهات آمه است در اونجای که حکام الزامی چیست اونجا فقط موقعی که تضاهم بین ضرورت یا دو تا حکم در حقیقت دو تا حکم شردی با هم قرار میگیره در امور اجتماعی تشخیص اهم به عهده حاکم شرد است جناب آقای مومن رحمت الله هم همین ایده رو دارن با اینکه ایشون با کلید واجبه منطقه الفراق شیعه صد نکادانه مواجه میشن ولی تدقیق بحث مفهوم شیعه اینه اینکه مفهوم شیعه صد محدودیت ولایت الهی رو منطقه الفراق از حکم الزامی میداند چون شیعه معتقد است که هر حکمه هر واقعی در خارج حکم شرعی دارد این قراین غلط از بحث مفهوم شیعه صد تقریبا عامل بلواس و بسیاری است کسانی که در بحث منطقه فراق ایشون رو نقد کرده یه ایده دیگه هم بحث حضرت امامه که ایشون معتقد است محدودیت ولایت فقیه تمام احکام فرعی است که این اینکه اون نامه ای رو که سال 66شون دارم بعد بخونیم اونجا با هم توضیح بدیم آقا جناب آقای اسماعی قائل این است که احکام شرعی ثابت الهی احکام تکلیفی و احکام وضعی است ولایت فقیه در رتبه امتثال است در کجا فقیق دیگه حق داره در اون جایی که تزاهم اتفاق میفته تطبیق تطبیق از از وظایف فقیق میباشد خب دعوی دعوی بحث قانون اراضی ریشش برمیگرده به قبل از تشکیل مجلس و نهاد رسمی در شورای انقلاب یه طرح بحث بحث تکلیف اراضی زراعی و شرعی شه، شهری شکل میگیره در ابتدا سه بزرگوار آقای بهشتی، آقای مشکینی و آقای منتظری به نمایندگی از امام ایده ای رو میارن که این ایده اصلش اینه که زمین‌های انفال مالکیت خصوصی پیدا نمیکنن در اختیار حاکمیتا اون کسانی که حیازت کردن و آباد کردن زمین‌های موات رو این زمین‌ها در اختیارشون قرار میگیره ادامه میده هرچند که مالک نیستن ولی کسانی که زمینهای را حیا حیازت کردند بعد رها کردند و بعد امراک کردند و بعد رها کردند و ها دوباره تبدیل شده هم به زمین های رایی که در استدلال اسمی زمین های بایر موات بوده احیا شده دوباره به بایر تبدیل شده این بندجیم اون قانون نازل به این سر به این دست از زمین است که محل دعوام همینه. یا میخواد دعوه های بند جیم که میگن ما رو همین قانون عراضی در اونجا جناب آقای مشکنی جناب آقای منتظر جناب آقای بهشتی ایدهشون اینه که ما نگاه میکنیم به اون منطقه ببینیم عرفه که صاحبان زمین چقدر زمین دارن بین 5 تا 10 هکتار دو یا سه برابر عرف به مالکینی که الان به مالکین که به اون حیازت کنندگانی که الان یاد دارن بر این زمین به اونها داده میشه بقیه زمین ها از اونها گرفته میشه به, به کشاورزان یا افرادی که در اون منطقه میخوان کشاورزی کنن واگذار میشه این چون مالکیت خصوصی رو تحت اشعا قرار میداد بسیار حساسیت درنگیز بود که جناب علی دوست حفظمالله هم دوست تاکید گردن که این دعوی بسید مالکیت خصوصی حتی که ریشه فقط مالکت خصوصی نیست. یه سخمامی بسیار بسیار مهم می جناب آقای مشکلی داره که توضیح میده اونجا که ریشه اختلاف ما و برای دوستان در جامعه مدردسین و جای دیگه سر تا نقطه است. یکیش مسئله محدوده بلاعت فقیه یکیش مسئله مالکیت خصوصیه و یکیم مسئله قایده لازرر که حالا این قاعده لازره رو دیگه بزرگان دیگه زیره به کرمان میبرن حضرت امام به نحوی توضیح کرده که تقریبا در تاریخ فقاحت پیشا است قاعده لازره رو حضرت امام یک حکم مولوی سلطانی میدونه حالا این حکم مولوی سلطانی بسیار بسیار در اندیشه حضرت امام مهمه که چون رابطهش با سایر احکام شرعی رابطه حکومت حکومت و حکومت است و مرجع تشریف این قاعدم خود حاکم است نه کسی دیگر این که این این دعوا بعدا در خود قانون قان کارم قان همین قاعد اثر عمل میکنه پس ما الان این اختلاف از اونجا شروع میشه مخالفت ها بالا می گیره این مخالفت ها بالا که میگیره به نهری بالا میگیره که بعض بعضی از حضور باران در حوضه اعلام میتونن که اگر این, اگر این قانون تصویل بشه ما کفن بوشیم یه بیرون شاید بشید در یه جلسه ای که دیگه خیلی روح اصابش را میرن اعلام میکنه که اگر بخواید ادامه بدید ما به مردم اعلام میکنیم که این از اجتهاد شاگران خمینیست اونم اجتهاد شماست به دعی مردم میذاریم این دعواه بالا میگیره گزارش‌های منفی واسه حضرت امام بسیار بسیار زیاد میره که آقا در فلانجا ما اصل خود داره زیر سوال میره اینایی که میخوان زمین‌ها رو تحریب بگیرن بلد نیستن اینا که زراعت نکردن داره بعدا میاد با این ما در شرایط اول انقلاب نیاز به فلان دله فلان داریم اینها همه این دعواها حضرت امام یه هیئت 7 نفره تعیین میکنه که اینو تعیین تکلیف کنم میخوره به جنگ امام معاند میکنه میگه فلان معاندش این درواب معلق میشه ولی در سال شفت دوباره در قضا در قدقامت قانون عراضی شهری دوباره رو میاد حالا اون رو بحث اراضی زراعی بود اون فعلا مسکود حالا اومده توس از قضیه بحث عراضی شهری تو قضیه عراضی شهری من چقدر وقت دارم؟ یه تانر گذاشت. خب قانون اراضی شهری که گذشت بعد من 5 برابر شما مبلغ تو نه من 5 برابر از پس میدی کجا؟ رو چیکار کنم آقا در بحث قانون اراضی، در قانون حرف کلی چی بود؟ حرف کلی این بود که اه... کسانی که در محدوده زمین شهری... شهری دوباره زمین هایی دارن که الان بایر شده ما اینا رو ازشون میگیریم دو برابر عرف اون منطقه بهشون می‌دیم، بقیه رو جز املاک حاکمیت رو به مردم میدیم به عنوان زمین شهری برای هم مسکن بسازن دوباره همین اختلافه میاد. آقای مشکیت تو اونجا یه مصریک تو اون اما جمعه یه صحبتی می می این شهری که اومده. همون امتداد همون دروای ماست امیدوارم که از مجلس به سلامت بگذرد و از کانال بهش منظور شورای نگهبان زبه شرعی نشود این میاد توی ماجرای مجلس شورای نگهبان این قانون رو به استناد همین که آقا ما در وسط مالکیت باید انتراز باشه و شرط دیگه این نداره این رو رد میکنه جناب آقای رفسنجانی در تاریخ پنج هفته هزار و, و شست از حضرت امام میکنه که امام این اتفاق افتاده و این الان جود ضروریات حرکت ماست و این در شورای نگهبان گفت شده حضرت ایمان دیگر ما محنا رو نمی دیگه این مقاله هست و مستنددش هست دوستان در وقتی قرار می دن دوستان می تونم ببینن حضرت ایمان توی بی... ماجره استفتایی فتوایی که می یا حکمی که میدن در 19 هفته 1360 ایشون میگن که تطویق اناوین اناوین ضرورت حرج و اون اناوینی که مستلزم فساده است از شعون مجلس هست از حقوق عامه مردم است و حقوقه مجلس است. جناب آقای صوفی رحمت الله علیه این حکم 19ام 21 هم، یا 22ام اسفام میده. من با این مدل نمیشه ادامه داد. یک ای در صحیفه هست به تاریخ 25 حرف 1960. جواب تلگرافی است که مرحوم آیت الله العظمى خیر محمد باقر گلپایگانی محمد سید محمد رضا رحشید سید محمد رضا پروفایزانی برای امام فریدان امام پاسخشو میده این نامه میدونید 10 سال حکم مهرمانه خورده بعد از 10 سال تو صحیف میاد ولی تاریخش مال همین ایام 25 هفت <تصفح> یعنی جناب اسفاهی رحمت الله استفاده استفا داده زاین حوزه رهبران ایشون نامه رو به امام فریدان امام در روز قدیر داره پاسخ میده داره جوابی یه حرفی هم داره میزنه میگه این تلگراف شما واصل شد ایاد در شما مبارک باشه ولی همه که گفتم مجلس معلومه در سر حق قانونگذاری مجلسه امام دو نامه میگه میگه مجلس حق قانونگذاری ندارد آنچه که بهشوا گذار شده اینه که تطبیق اناوین اناوین سانویه داده شده و فقه های شورای نگهماد بعد رو حکم شناسی متمرکز بشن و نمایندگان مجلس باید روی موضوع شناسی تفکیک که موضوع شناسی در این لایه از حرفای امام که مرز بین قانون شورای شوران و مجلس جمهوری اسلامی رو با قانون اساسی مشروطه اینجا میشه فهمید که اون تحلیلی که میرزا داشت که مانست... مال صفی و مالان که محدوده اختیارات مجلس حق مشورتی در محدوده مال صفی هست از نظر امام اینجوری نیست حضرت امام حق مردم رو تکلیف قانونی میدونه آقای صاحبی قبول نمی کنم سه روز بعد در یک نامه میگه خب باشه ضرورت هست پذیرفتیم. رفتیم اصل تطبیق ضرورت با شماست ولی در ضرورت کار خوبی انجام نشده محدوده ای که ما سه برابر میدهیم که نیاز همه, جا. همه جای اینجوری نیست ضرورت بردیدو صحنه به جزئیات رو کنید این حکم چون کلیست دقت در موضوع شناسی ندارد دوباره بخص میره پیش امام حضرت امام تاکید میکنه که نظر مجلس اینجا مقدم است در نهایت در 28 جمع کنم از امام در 28 دوازده هزار و و با همون ترتیباتی که مجلس گفته بود با اضافه کردن این این حکم بنابرای ضرورت است و در یک بازه موقت باید اجرا بشود تصویب میشه در 29 همون ماه یعنی یک روز بعد شورای نگهبان این گونه این حکم میپذیره که بنا تشخیص ولی فقیه و ولایت شرعی او این حکم خلاف اسلام تشخیص داده نشد یعنی حرف امام رو از باب چی پذیرفت ولایت شرعیه حکم حاکم نه از باب اینکه تطبیق عناوین سنویه از وظایف مجلس هست الغرز ارزم تمام مقاومت جناب صافی و بخش زیادی از جامعه مدرسین و از جمله بعدم خود حضرت آقا و آقای رفسنجانی که این بحث دوباره با قانون کارم تشدید میشه در نهایت منتهی به تشکیل مجموعه تشخیص مسئلات نظام میشود بیراه نیست اگر بگویم ایده مجمع تشخیص مسئلت نظام به این سرپسیه بسیار به ایده مرحوم آقای گلپایگانی صافی گلپایگانی رحمت الله علیه نزدیک تر است تا ایده اولیه حضرت امام چون امام در اون نامه نهایی که سال 66 مینیمیسن که سران و قوام که آقا ما گیر کردیم اینجاست که جای ورود فقیه و اعمال بلاد فقیه هست بعد از این همه کارهای مشورتی دوباره دعوا شده بین مجلس و شورای نگهبان بین دولت و شورای نگهبان اینجا چه کار کنیم امام میگوید در این چنین اموری که این مسائل کارشناسی انجام شده است نیازی به اعمال ولایت فقیه ندارد ولیکن جهت احتیاط من اسد احمد در جلسات شرکت کنند به بنده گزارش بدهد این سیاقی که ما در شورای در مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که از شؤون رهبری میدونیم و تفضیضه فقیه میدونیم بیش از این که به ایده حضرت امام نزدیک باشد به ایده مرموم آقای صافی رحمت الله نزدیک است ببخشیت قانون کارم خیلی نکات قابل توجهی داره حتما می کنم بحث قانون کار رو حتما ببینید و واقعا برای من که خیلی در ساموز بود سیده یک فقیه که الان رقمی اختلافی با یک زعین چگونه قاعد من و منضبط کنش میکنه و اونجایی که احساس میکنه که دیگه نه دیگه آقا من مردی میدان دیستم بدون هاشی احسازی استفا میده که این خودش درس بسیار بسیار بزرگه. انشاءالا خداوند به این ایام مبارکه دریفت ای رحمت خودش رو برکات خودش رو مرد بزرگ نازل کنه به برکات سلوهی بر محمد و عالم محمد. <تصفيق> تشکر اگر از اینکه که ایده می‌شناسم. از آنچه می‌شناسم، می‌شناسم. پس آنچه می‌شناسم، از آنچه در روی کرده ایشان رو برجسته کنیدن و این فضای اختلافی رو شرف پول کنیدن برجسته کردن اینکه که چگونه باید اناغین سانوی تطبیق بشه و در کنار اون حق تطبیق از کیست. چند جمله اخیر حاجای محمدی برجسته کننده بلگوی کار محکومتال صافیست این اینکه ولایت محدودش مشخصه از منظرشان یک جایی اعمال خلاف شر نیتوانه مشروع باشه اما به ضرورت و حق تطبیق اون ضرورت ها از آن ولی امر مسئله بعدی موضوع شناسی موضوع شناسی تطبیقی خب یه موقع زور میشه نگاه کنیم فکر کنیم که در بحث ولایت ام خیلی اختلاف هست مسائل بعد دیده نشه ایشان خب ولایت رو قبول دارن اما در مونا مواجهه های مثراقی هم در ضرورت شناسی های مجلسیان تأمل و تردید داشتن و در مرحله بعد تطبیق یک تعبیر دیگه از جای محمدی یک دو بار برجست اشاره کردن شاید نیاز به برجست سازی داره اینکه در مجلس اون وقت بود حق تدقیق حق تحقیق از آن حاکم و ولی امر یا مردم اگر مجلس رو نماینده مردم بدانیم مرد، یکایی که نمایندگان نمایندگی حق مردم میکنند مداخله حاکم، حاکمیتی اونها رو نه به عنوان حاکمیتی که ولایتی از ولی عمر گرفتند بلکه از جانب مردم این حق آمده و اینجا مدل و الگو فرق رو خواهد کرد. اگر حق از آن اونها باشه که نگویا ولی امر جای تر نیست و حق حاکمیت مطرح نیست ولی حضرت های طلاسطافی حق حاکم رو می دانستند. اما هم در دایره اناویل سانویه و کیفیت تطبیقون ها انگلت هایی به مجلسیان وارد میکردند هم در اون تشکیز مصداق ها هرچند ولی امرون ها در دامه اخیر اجازه بده و اون تطویح های مصداقی رو اینکه برابر زمین بدن اونجا مناقشه داشتن و ایده ای که حالا اگر نتوانستن با اون فرایندی که اشاره کردن سازگاری داشته باشن توانند کنار بکشن و میدان رو برای اعمال نظر ولی عمر باز کنن بدونی که بخوان به تقابل بیانجامه و ایده مجموعه تشخیص با در واقع درایت حضرت ما از منظر آجای محمدی به ایده ای آیت الله صافی نزیده و ت...